موسیقی گیدو دومه جمادی الول 642 مولانای شکمسیر چراحت در درباره فضیلت های سختی کشیدن حرف میزند آدم باید درباره چیزی حرف بزند که خودش امتحان کرده وگرنه مولوی کجا و سختی کشیدن کجا دیدم نمیتوانم تحمل کنم پا شدم و قرالوند کنان از مسجد بیرون آمدم. رفتم دوباره پای درخت افرا نشستم. چون میدانستم تا وعظ و خطابه تمام نشود کسی چیزی توی کشکولم نمی اندازد. شروع کردم به پاییدن اطرافم. همینطور داشتم برم را نگاه می کردم و کم کم داشت پلکایم سنگین می شد که یک دفعه مردی به چشمم خورد که تا آن موقع ندیده بودمش. سرتاپا سیاه پوشیده بود. روی صورتش یک دانمو هم نبود. عصای درازی به دست داشت و گوشواری نقرهی به یکی از گوشهایش. ظاهر و رفتارش چنان غیرعادی بود که نتوانستم چشم از او برگیرم. درویش دوروبرش را نگاه کرد و یک دفعه انگار متوجه من شد. آنقدر عادت کرده بودم مردم خودشان را به ندیدنم بزنند که منتظر شدم فورا رویش را برگرداند. اما درویش دست راستش را روی قلبش گذاشت و چنان سلامی به من داد که انگار از روز ازل دوست بوده ای. حیرت کردم، بی اختیار اطرافم را نگاه کردم، ببینم دارد به کس دیگری سلام می دهد یا با من است. اما آنجا فقط من بودم و آن درخت افرا. آخر سر فهمیدم دارد به من سلام می کند، من هم دستم را به طرف قلبم بردم و جواب سلامش را دادم. آهسته آهسته نزدیکم آمد، سرم را خم کردم، با خود گفتم، لابد میخواهد خواهد سکی مسی توی کشگولم بیندازد، یا تکهی نان خشک به من بدهد، اما درویش کنارم زانو زد و چشم در چشمم دوخت، گفت، سلام علیکم برادر، گفتم، علیک سلام درویش صدای خودم به نظرم غریبه آمد یک دفعه یادم افتاد خیلی وقت است با کسی حرف نزده ام و فراموشم شده صدایم چه شکلیست است خودش را معرفی کرد گفت اسمش شمس تبریزی است اسمم را پرسید خندیدم و گفتم من اسم داشته باشم یا نداشته باشم؟ چه فرقی میکند؟ درویش اعتراض کرد هر انسانی یک اسم دارد. خدا اما بیشمار اسم دارد. ما از این اسامی فقط 99 تایش را میدانیم. خب حالا فکر کن وقتی خدا این همه اسم دارد آن وقت انسانی که او از روحش در آن دمیده چطور میتواند بدون اسم زندگی کند ندانستم چه جوابی به این سوال بدهم امتحان هم نکردم گفتم زمانی مادری داشتم و همسری به من می‌گفتند حسن شمس سرش را تکان داد و گفت پس من هم حسن صدایت میکنم بعد کاری کرد که اصلا انتظارش را نداشتم. ای با قاب نقره ای از پهلویش درآورد و به طرف من گرفت. گفت این را بگیر. ذاتی مبارک در بغداد داده بود. اما قسمت تو بوده. اگر روزی جوهره را فراموش کردی، زیبایی الهی درونت را به تو نشان می دهد. با تعجب گفتم، به آدم جزامی آینه می دهی؟ با اینکه اینقدر زشتم، فرصت نشد ادامه بدهم، پشت سرمان هیاهویی به پا شد. اول فکر کردم توی مسجد جیب برگ رفتند. اما هیاهو و داد و فریاد هی بیشتر میشد. معلوم بود اتفاق جدیتری افتاده. به خاطر یک جیب این همه هیاهو نمیکردند. کمی بعد فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. گفتند، زنی لباس مردانه پوشیده و سعی کرده وارد مسجد بشود. آن هم چه زنی؟ می گفتن بدکاره است. گرفته بودندش. دیدم چندتا مرد دارن زنک را با کتک و حل بیرون میآورند. گروهی پشت سرشان راه افتاده بودند و با عصبانیت فریاد می زدند. این متقلب را شلاق بزنید این روسپی را شلاق بزنید های عصبانی ریختن توی کوچه میانشان زن جوانی دیدم در لباس مردانه از ترس رنگ رخش پریده بود شده بود عین میت از چشمهای بادامیش ترس و وحشت میریخت تا امروز بارها شاهد مسله شدن آدمها بودم هر بار هم حیرت کردم. چطور چطور میشود آدمهایی که به تنهایی خیلی سربزیر و متواضع و حتی مهربان به نظر میرسند به محض این که وارد شلوغی میشوند تغییر میکنند و خشن و بیرحم می میشوند آدمها که بعضی هایشان صنعتکارند بعضیها دکهدار، بعضیها فروشنده دورگرد بعضی ها نجار و شاید آزارشان به مورچه هم نرسد وقتی دست حرکت می‌کنند قددار می‌شوند. تنبیه توی میدان از وقایع عادی است معمولا هم به خون ریزی ختم می‌شود. جسدها را توی میدان آویزان می کنند تا عبرت دیگران شود به درویش گفتم زن بیچاره اما وقتی برگشتم و نگاه کردم اثری از درویش نبود یک دفعه دیدم درویش مثل برق می دود مثل تیری از چل رها شده با سرعت و مسمم به طرف دسته لات ها می رفت. من هم فلفور از پیش دویدم اما رسیدن به او غیر ممکن بود شمس نزدیک دسته لات ها که رسید اصایش را مثل بیرق بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد بی ایستید جمعیت یک دفعه موج برداشت مردها از هول دادن زن دست کشیدند و به این دیوانه سیاه پوش نگاه کردند که راهشان را بسته بود. شمس نوک آهنی عصایش را به زمین کوبید و فریاد زد: خجالت بکشید. این چه وضعی است؟ سی مرد به یک زن: آره؟ این کارتان عادلانه است. مردی درشت هیکل و چاق و چله که یک چشمش هم لوچ بود پیش آمد و گفت این زن لیاقت رفتار عادلانه را ندارد ادالت مال کسانی است که لیاقتش را دارند طوری رفتار میکرد انگار رهبر این گروه هست. نزدیک که شد شناختمش گزمه بود اسمش بیبرس تمام گداهای قونیه از دستش زله شده بودند بیبرس ادامه داد این زن برای گول زدن جماعت لباس مردانه پوشیده و رفته توی مسجد بیان آنکه خجالت بکشد آتی مسلمان شده شمس پرسید یعنی تو الان میگویی که این اولاد انسان برای گوش دادن به موعظه آمده به مسجد حالا چه مجازاتی برایش در نظر بگیریم همینطور است از کی تا حالا آمدن به نماز جمعه جرم است از شما می‌پرسم صدا از جمعیت در نیامد مردی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود از میان جمعیت فریاد زد. نماز جمعه برای زنها واجب نیست. نیایند. تازه این زن پاک دامن هم نیست. روسپیست توی مسجد چه کاری دارد؟ بعضی ها در ردیف های عقب این را که افسار پاره کردند. همصدا فریاد زدند. هر جایی. بیناموز جوانی که انگار جوش آورده بود پرید جلو. دستار زن را گرفت و با تمام قدرتش کشید. دستار که باز شد گیسوان بلند و طلایی زن انگار در هوا موج برداشت و دور شانه ریخت. نفس همه بند آمد. جوانی و زیبایی زن روسپی هوش از سر آدم می برد. شمس که به گمانم فهمیده بود جماعت و دل شده اند با صدای بلند گفت تصمیم بگیرید برادرانم. این زن کار بدی کرده؟ شمس این حرف را که زد دست زن را گرفت و به طرف خودش کشید. این طوری زن را با یک حرکت از دسته لاتا دور کرد. زن جوان پشت درویش پناه گرفت. مثل دختر بچی کوچک که در دامان مادرش پنهان می شود، همانجا روی زمین نشست. بیبرس به طرف شمس آمد و صدایش را بالا برد. داری اشتباه بزرگی می کنی درویش، توی این شهر قریبه ای. رسم و رسوم ما را نمی دانی. تو در این مسئله دخالت نکن. یکی دیگر قاطی صحبت شد. تازه تو چهجور درویشی هستی؟ کار مهمتری نداری که آمده ای از روس دفاع می کنی؟ شمس تبریزی مدتی ایستاد و هیچ حرفی نزد. انگار داشت اعتراض ها را سبک سنگین می کرد. در صورتش اثری از خشم نبود. ساکت و مصمم بود. گفت خیلی خوب. شما اولش چطور متوجه این زن شدید؟ معلوم می شود به مسجد می روید و این طرف و آن طرف را نگاه می مؤمن حقیقی اگر کسی که کنارش نشسته لخت هم باشد، متوجه نمی شود. هر کس خدا را حقیقتا ذکر کند، همه چیز را جز او فراموش می کند. شما امروز در اصل این زن را نگرفتید، بلکه خودتان را رسوا کردید. با گرفتن او نشان دادید فکر و ذکرتان جای دیگری است. الان هم به مسجد برگردید. الله این بار درست و حسابی ایمان می آورید. سکوتی عجیب و قلیز بر کوچه به آن بزرگی حاکم شد. جز بوتهای خار که در دست باد این طرف و آن طرف کشیده می‌شدند، هیچ چیز و هیچ کس نتوانست تکان بخورد. سرانجام شمس تبریزی، عصایش را تکان داد و رو به جمعیت گفت یالا همگی برگردید و به موعزه مولانا گوش بدهید. آنچه چه می دیدم باورم نمی شد. همه بهتشان زده بود. کسی برنگشت و نرفت. اما بیشتر جمعیت چند قدم عقب رفته بود. اکثریت با آنهایی بود چه نمیدانستند چه کار کنند و مات و مبهوت برشان را نگاه میکردند. درست همان موقع زن روسپی از پناهگاهش در پشت درویش بیرون آمد مثل خرگوش کوهی ترسان جست و خیزکنان در حالی که گیسوان بلندش در هوا تاب می‌خورد شروع کرد به دویدن در چشم به هم زدنی به نزدیکترین کوچه پیچید و از نظرها پنهان شد دو نفر خواستند دنبالش کنند اما شمس تبریزی اسایش را چنان آنی جلوی پایشان گرفت که هر دو سکندری رفتند و زمین خوردند جماعت زدند زیر خنده من هم خندیدم وقتی آن دو نفر که از حیرت گیج شده بودند توانستند خودشان را جمع و جور کنند و از زمین بلند شوند زن روسبی خیلی وقت بود از نظرها ناپدید شده بود درویش هم لابد با این فکر که دیگر کاری آنجا ندارد راهش را کشیده و رفته بود